سیو سیومین حدیث فرمودید رسول الله صلی الله علیه و سلم المنتعل راکب المنتعل یعنی کسی که دمپایی پوشیده همچون سوار هست نه اینکه سوار اسب بل سواری که هست سوار شده مثل کسی که سوار بر حیونی هست مثل کسی که سوار اسب الاغ یا ماشینیه اون کسی که دمپایی پوشیده این حدیث دلالت بر اخذ اسباب داره بر خلاف اشعاعره و ماتریدیه که نفی اسباب میکنن رسول الله صلی الله علیه و عباد الله تداوی ولا تداو بالحرام تداوی بکنید خب اخذ اسبابه ولی که نه با حرام فئن الله لم يجعل ذنئا الا و نازل الله هیچ بیماری نبوده که بیافرینه به خلقت کنه مگر اینکه در مقابلش داروی آفریده باشه یعنی داروی اونم خلقت بکنه بله درد داده دارو هم داده درمان هم داده. باید اسباب را بگیریم نه این که بگیم که الله بخواد خودش ما را شفا میده. نه. باید دنبال اسباب باشیم. بخاطر همین رسول دستور میدهند یا عباد الله تداوی بندگان الله دنبال دوا و درمان باشید. شخصی در زمان رسول الله صلی الله علیه و وسلم آمدن شطرشونو بستن و گفتن که اگر خدا بخواد حفظش میکنه، جایی نمیره این شطر. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ثم توکل. اضل ببند بعد توکل کنید. اخذ اسباب گرفتن اسباب نه که اسباب را رها بشه. اشعاعره و ماتریدی میگن نه اخذ اسباب شرکه چاقو خودش که نمی بره خداست که می بره آتش که نمی سوزنه خداست که می سوزنه. نه الله چاقو رو گذاشته برای بریدن اون چاقو می بره این که معجزه بشه بله معجزه شد و اون چاقو دست ابراهیم سر اسماعیل را نبرید و اون آتش ابراهیم رو نسوزوند اسب بر سوزاندن آتشه سب بریدن چاقو هست چون الله این چین او رو آفریده یعنی این آفرینش الله نفی این آفرینش نه اون سببی هست که الله در اون گذاشته و عدم گرفتن اسباب تواکله که در زمان عمر بن خطاب رضی الله عنه سونیا زمان بولاشدان گرسنه بدون توشه و آذوقه گفتن اگر خدا بخواد سیر میمونیم عمر بن خطاب میگه رحم نمیگه هؤلاء متواکلون و اسم مترکین انا متواكلا نه چون اسباب رها کردند طبق اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این حدیث را هم که داریم طبق فرموده رسول الله صلی الله علیه و و اون فقه فهمی که امثال صلاح عمر از دین داشتن فرق بین توکل و توکل و گرفتن اسباب از جمله توکل و اعتماد بر الله تا اینکه پاهامون خراش بر نداره خاری توش نره شیشه پامون رو نبوره از اون آافت و مسیبت و از اون رنجش هایی اون سوزشی که سبب مثلا با داغی زمین به پامون برخورد میکنه از اونها در امان باشی بله المنتعل و راکب اون کسی که دمپایی پوشیده مثل کسی که سواره هست پای خودش رو در امان گذاشته و خودش رو دور نگه داشته با این سببی که گرفته و این سببی که اتخاذ کرده تا اینکه به پاش آسیب نرسیده از مواوعب باان باشید بله سنت گاهی انسان بهرهنه. روی شن راه بره چنانچه رسول گاهی با پای برهنه روی شن ها راه می رفتن بله ولی نه اینکه همیشه انسان بدون دمپایی بره و سبب بشه که پاش آسیب ببینه جسم ما امین این جسمیم امانتدار این جسم باید حفظش بکنیم نذاریم که آسیب ببینی این جسم به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و توصیه میکنه که شبها انسان با شوا با روغنی با خسن روغن زیتون با شوا دهام بکنه روغن مالی بکنه اینا توصیه شرع بخاطر حفظ این جسم این جسمی که امانت در دست ما